دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به قیمانه زدند ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت با من راب نشین باده مستانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند جنگ هفتاد دو ملت همه را اوزبنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند شکر ایزد که میان من و او سلخفتاد سوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند آتشان نیز، که از شعله او خندت شم آتشان است که در خیرمن فروانه زدند کس چو حافظ نگوشاد از رخ اندیش نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند